ألعظ <تصفيق> الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يذهل له صلام ظل له من يذهله فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننصيها نأتي بخير منها أو نسلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شکر و سپاس الله مهربان را که به ما این توفیق را اینایت فرمود تا بار دیگر در این روز مبارک و مکان مقدس برای اداع فریضه الهی گرد از الله مهربان برای خودم توفیق گفتار نیک را خواهانم و امیدوارم که الله مهربان به بنده و همگان توفیق انجام اعمال صالح را اینایت بفرماید. در این او که بنده خدمت شما تلاوت کردم از الله متعال می‌فرماید که ما هیچ آیه‌ای را منسوخ نمی‌کنیم یا اینکه آن آیه را از ذهن تو ای محمد صلی الله علیه و آله و نمیبریم مگر بهتر از آن را یا همانند آن را میآوریم آیا ندانی که الله متعال بر هر چیز کاملا توانا و قادر است در اسلام یک جریانی است به نام نسخ مطلب نسخ این است که گاهی یک حکمی را اللای متعال بنابر حکمت ها و علت هایی که اللای متعال خودش بهتر می نسبت به اوزا و احوال مسلمین در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم برخی آیات را یا برخی احکام را موقتا نازل کرده بود. که تا چند سبایی مثلمان ها به اون آیات یا به اون احکام عمل کنند و بعدا زمان مناسب آیات و احکام مناسب بیاد و اون حکم قبلی را نزد کنه و به دین به بعد باید حکم جدیدی باشند. اگر ما بخواهیم مثال نسخ در اسلام را به امروزه مثال بزنیم مانند بخشنامه هایی که گهگاهی از طرف شرکتها یا برخی از ادارات میاد که این بخشنامه موقته بعد از اون یه بخشنامه دیگری میآید که اون بخشنامه سابق را منحل میکند و یک بخشنامه جدید را اجرا میکنند ما در اسلام این نوع احکامات داریم و این آیات داریم که در زمان صحابه و زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بودن اوائل موقتا نازل می شده بعدم اون برداشته حکم جدید می آمدیم. با عنوان مثال ما در قرآن داریم که اگر زن مردی مرتکب عمل زنا بشن الله مطال در قرآن می فرمزد زندانی کنید تا زمانی که الله تعالی حکمش را بر شما نازل. خب اوائل همین بود بعد آیه نازل شد که زناکارها اگر مجرد باشند باید سرد ضرب شلاق بخورن و اگر متعهل باشن باید سنگسار باشن یا مثلا در اوائلی که روزه ماه مبارک رمضان فرض شده بود اگر کسی افتاری نمیخورد و می خوابید و بعد در شب بیدار می شود. دیگه حق خوردن نداشت. باید شب را هم همینطوری گرسنه شفری می کست. فردا هم باید روی بگیره. خب بعد این حکم شد، آیه ناظر شد که شما میتونید شب شبها بخورید و بیاش را تا که صبح صادق بشه، از اون به بعد روی بگیره. یا در اوایل اینطوری بود که اگر فردی ازای پخته شده با آتش را میخورد وزوش گویا شکسته باید وضوی جدید میگرف اگر وضوی داشتی قبلا. خب بعدا احادیس آمد و این حکم منسوخ شد و این حکم جدید اومد که اگر کسی خضای پخته شده هم بخورد اشکالی ندارد وزویش نمیشه کنه و وضویش خللی درش ایجاد میشه یا مثلا در اوائل اینطوری بود که اگر یک فردی به نماز میرسید میدید امام یک رکعت دو رکعت خونده خب بدون مختبیا میپرسید که امام چند رکت خونده اون زمان سخن گفتن هم در نماز مجاز بود و اینطوری می کرد که اول اون یک رکعت دو رکعت مانده شده شه میخوان بعد با امام میرسید ادامه را با امام خب هر دو حکم منسوخ شد هم سخن گفتن در نماز ممنوع شد هم حکم جدید آمد که نیازی نداره وقتی میآیید شما اون یک رکعت دو رکتی که ماندید اول بخونید بعد با امام هم بشید شما با امام بخونید بعد که امام سلام داد شما بلند شید اون نمازتون تکمیل کنید و ادامه شد ما از این آیات و احکام زیاد داریم در اسلام به این همین جریان قبله که ما مسلمانها یک زمانی به طرف بیت المقدس نماز میخوندیم خب این جریان منسوخ شد و به طرف مکه دستو داده شد که بخوند. یا اول روزه آشورا فرد بود خب بعدا منسوخ شد و یک حالت استحبابی و یک حالت سنتی به خودش کرد از این نوع حکام و آیات ما زیاد داریم که الله متعال اول دستور داده یا رسول الله صلی علیه وسلم موقعتا دستور دادن و اون حکم برداشته شد و حکم جدید آمد بعد از لفات رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دیگه ما جریانی نداریم که آیه ندخ بشه یا حکمی منسوخ بشه و از بره نه بعد از رفات رسول الله ما چنین چیزی نداریم این تمام جریانات در زمانی اجرا شده و زمانی اتفاق افتاده که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در قید حیات بودند خود رسول الله دستور میدادند یا اینکه آیه نازل می شد حکم سابق برداشته می شد و حکم جدیدی می آن اللہی به همین مقلب اشاره می که ما نمسخ من, من آیت این ما هیچ آیه ای را منسوخ نمی کنیم یعنی اون آیه را بر نمی داریم یا ها یا اینکه از ذهن پیامبر بزرگوار اسلام نمیبریم مگر اینکه نعت به خیر منها و مثلها یا بهتر از اون را میآوریم یا همانند آن را میآوریم تعالی من الله على کلش شيء قدير آیا نمی دانی که الله تعالی نسبت به هر چیز بی‌نهایت توانا و قادر است در نسخ بعض احکام این لطف الله متعال را میرسانید احسان الله متعال را میرسانید الله متعال از آنجا که خالق ما ایسانها و ما رو خوب تشخیص میده و میدانه که چه چی چیز در چه وقت و در چه جا برای ما مناسبه همون تصمیم را الله متعال میگیرد در زمان پیانبر بزرگوار اسلام خوب افراد تازه مشرفه به اسلام می شدن برخی از عادتها و برخی از رسوماتی که در میان عربها قبل از آمدن قرآن مروج بود یک شبه ترک کردن بر اونها مشکل علای مطال رفته رفته احکام را نازل می مثلا شما جریان شراب را نگاه کنید ما چهار آیه در قرآن داریم که به مراحل مختلف این جریان شراب را ترکید اولا در آیه یعن قرآن اومده که شما از این انگور و از این خورما یک روزی نیکی برای خودتون هم میگیرید اما یک چیز نشعاور آورم ازش درست میکنه از اینجا اشاره میکنه که اون چیز آور با رزق نیک فرق داره کمی اشاره به این میکنه که شراب چیز خوب آیا یک دیگر نازل میشه بعدها که عاد رسول الله درباره شراب میپرسند و درباره کمار نمیپرسن میگه منافعی داره اما ضررهایی هم داره ضررهاش بیشتر از منفعتش خب اینجا یک فرد عاقل متوجه میشه که اگر یک امر یک کاری یک جریانی که در این نفع باشه هم ضرر اما ضررش بیشتر از نفعش باشه اون کار انجام تا اینکه بعدها آیه ناظر میشه که نه زمان نماز میخورید شراب نخورید بعدا آیه چارم ناظر میشه که اصلا شراب و قمار اینا ریس و پلید و عمل شیطان هن. ازش باید فرهید کنید. ببینید مرحله به مرحله یه مراحل قبلی را جوری نزخ میکند یا ترمین میکنه و تدریج و مرحله به مرحله به جایی میرسونه که اون وقت میتونن قبول کنید. یا به عنوان مسائل در زمانی که اوائل ماه مبارک رمضان فرج شده بود روزه برای افرادی که توان روزه گرفتنم دارن اختیاریم. که روزه را رو بخورن به جای اون اطعام نسیم بدم خب اینطون عوائل برای عرب ها یه باره به با اونها دستور بیدید شما یه ماه روزه بگیرید سخت بود علای متعال آورد آسان کرد گفت میتونن اون کسانی که این آیه داریم در قرآن قبلا هم خوندیم که افراد میتونن در زمانی که رمضانه با وجود که توان هم دارن، روزشونه بخورن و فدیه بدن اما اگر روزه بگیرن بهترن این وایل کمی عادت میکنن، آیا ناظل میشه که نه باید روزه بگیرید اینجا دیگه فدیه دادن یا خوراک به مساکین دادن فقط برای افراد مریض یا افرادی که اصلا توان روزه گرفتن را رو ندارن بنابر پیری ولی روزه باید از این احقامات مشخص میشه که الله تعالی لطف میکنن. اینکه برخی از احکامات را در زمان رسول الله ترمیم کردن، نسخ کردن و احکام یا آیات دیگری نازل کردند تا اینکه اون جامعه ای اون زمان بتواند خودش را سازگار کنه با احکامات اسلامی و بتواند عمل کنه این لطفه اللای متعال بوده بر یاران بزرگوار، پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین بر کل مثلانهای الله متعال میفرماید الم تعلم ان الله له ملک السماوات والعرض آیا این را ندانستهی ای؟ که پادشاهی آسمانها و زمین مالکیت آسمانها و زمین از آن الله و لکم من دون الله من ولی ولا نصیر و در حالی که علیوعظ الله متعال شما ندوسی دوستی داری و نه این آیه را اگر ما خوب دقت کنیم خیلی مشکلات ما حل شده اولا اللهی متعال چه می که ملکیت آسمان ها وزمین از اون الله یعنی خود ما با مال و اموال ما با تمام افراد دنیا با تمام اموال دنیا همه و همه مال ما نیست مال اللهی متعال اگر چیزی هم در اختیار ماست یا در دست ماست هم از جان ما مال ما همه چیز این یه امانته حقیقت مالک اصلی خداست این امانت چند روزی دست ما یه چند سباهی دست مایه بعدا از ما گرفته میشه به دست دیگری داده میشه و همین منوال دنیا میچرخمه نکته دیگر اینکه دوست اصلی حرم سلمان و مددگار اصلی حرم سلمان فقط الله متعاله الله متعال در اینجا میفرماید که مالک من دون الله میولی و ولنسی ایش دوست و هیچ مددگاری علاوه از رب العالمین برای شما مسلمانانی. پس اگر ما کمک می خواهیم باید از الله اگر دوستی می تلبیم باید دوستی الله را به چرا که وقتی الله با ما دوست شد اللهی متعال دل انسانها رو می به سمت ما. اگر الله با ما دشمن شد دل انسانها را می به اون سمت سویی که با ما دشمنی کنه. این مطلب را خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث بیان می این چنین. اگر الله متعال کسی را دوست بداره جبرائیل امین را صدا میزنه و میگه من فلان شخص را دوست دارم تو هم دوست بدار و جبرائیل امین به فرشته های آسمان اعلان میکنه که رب العالمین فلان فرد را دوست داره شما هم دوست بدارید و سپس محبت او در قلوب افراد در دنیا قرار داده میشه و انسان ها با ایش دوست می مراد از انسان ها یعنی انسان های صالح و نیک ورنه آدم های فجور و و کفار و منافقی هرگز با انبیا و افراد نیک خوب نیستند. حالا اینجا افراد صالح و نیز که مهر محبت این فرق تو قلوب اینو افراد گذاشته باشه. عکس قضیه هم هم اینطوریست که در این حدیث میاد که اگر الله کسی را دوست نداشته باشه بایش دشمنی داشته باشه، بغض داشته باشه جبرائیل (ع) من این من فلان فرد را دوست ندارم تا هم دوست نداشته باشی. جبرائیل هم به های آسمانی این اعلان را میکنه و سپس پس بغض و کینه و عداوت این تو قلوب افراد در دنیا قرار داده میشه. این افراد نیکم هم چنین فردی را دوست نمیدارن و پسند نمی کنند. اینه که الله متعال میفرماید که علاوه بر الله هیچ دوست اینی دوست دوستتری الهی، الله اگر انسان را دوست بذاره، بقیه همه انسان‌ها انسان را دوست میدارن اگر الله بخواد چرا که قلوب تمام ما بین اسبعین منصاب در میان دو انگشت از انگوشتان رب العالمین به هر کرفت که بخواهد به می چرخاند میچرخاند. سبب از الله جریان نصرت هم که جز الله کسی نمیتونه انسان را نصرت بکنه و یاری بکنه. اگر تمام انسان های دنیا جمع بشن چنان که در روایت ابن عباس میاد که رسول الله ایشون میکنه. میگه اگر تمام دنیا جمع بشن بخوان به تو نفی برسنن، نمیتونن. و اگر تمام دنیا جمع بشن بخوان به زرر هم برسنن، نمیتونن. مگر آنچه که الله متعال بخواهد ام تو ان انتس رسولکم. اینجا باز یک قضیه دیگر و یک جریان دیگر. الله متعال میفرمد آیا شما مسلمان ها میخواهید از پیامبرتان محمد صلی الله علیه و آله و سلم سؤالی بکنید و پرسجوهایی بکنید که کماسو ایلمون سامن قبلو چنان که پیش از این از موسی این نو سوالات شده بود وقعیت بدل کفر به ایمان اون کسی که بنابر چنین پرسش شروع کند به کفر و ترک کند ایمان را و با این طریق کفر را با ایمان عوض کند فخذل لسوا اون از راه راست گمراه شده و به طرف انحلاف شاهای بزرگوار اسلام گاهی از رسول الله سوال می‌کردن و این سوالات گاه سوالات نامناسب بود چنانکه که الله می‌فرمازد لا تسالو عن ان اشیاء ان تو از سوالات را نکنید. چون اگر برای شما نمایان بشه بدتان خیلی از سوالات را بی کردن. حالا صحابه نیتشون فهم دین بود اما گاهی اهل کتاب یک سوالات شکوک برانگیز را مطرح می‌کردند تا به این طریق مسلمانان دوچار شک و شکوک بشن و بیان از رسول الله این سوالات را بکنند. اعلی متعال نازل میکنه این آیه را که شما میخواید این کار را بکنید همونطوری که ها با موسی کردن بار بار سوالات بیجا میکردن و و پاسخ‌هایی را هم که می‌گرفتند به اونها عمل نمی‌کردند و به انحراف کشیده می‌شدند. چون سوال و پرسش اگر هدف فهم حقایق باشه این چنان که در آهات میاد شفای فرض جاهله و قرآن دستور میده فسال و احلت برید بپرسید اما اگر هدف از شکوک انداختن در میان از دیگر باشه یا پیچ تاب کردن مسائل باشه اینجاست ممنوع و فرق نباید چینی سوالات را بکنه. ببینید گاهی ما متوجه نیستیم. در یک جلسه یه شکی که شاید در ذهن ما باشه و در ذهن افراد موجود نباشه اون مطرح میکنیم و شاید اون سوال کننده نتونه پاسخ قانع کننده بده این شکوک تو اذهان دیگر هم بمونه. خب اینجا گناه ده. لذا اگر ما در اذهان نسبت به بعضی از مسائل شکوک و شبهاتی هست اولا نباید از هرکس هرکس پرسید بعد از کسی بپرسید که توان پاسخگویی به شبهات را داشته ثانی نباید این را در جلسات عموم و در محضر عموم افراد مطرح کرد چرا که شاید این شکوک تو ذهن اونها هم رسوخ کنه و اونها رم خدای نخواسته به طرف انحرافات بریم تنهایی بپرسیم اون شکوک را اما اگر نه یه مسئله ای هست که بحث شکوکی می کنه مسئله ای هست که به خاطر آگاهی شرعی و دینی خب اون ارادی نداره فرد مطرح کنه و بپرسه تا اینکه دو چهار شکوک دیگر هم نشه و خودش هم از نظر علمی و دینی آگاهی پیدا کنه الله متعال اینکه شما را بعضی از اهل کتاب سوالاتی برای شما مطرح می یا که شما را وادار می کنند رسول الله بپرسید خب شما اینا بدانید که کسی رو من اهل کتاب بسیاری از اهل کتاب یعنی از یهود و نصارا هستند که رو یردو نکوم من بعد ایمانکن کوم اینا دوست دارند که شما را بعد از اینکه مشرف به ایمان و اسلام شدید دوباره شما را بازگردونند سمت کفر یعنی شما را از اسلامتون بازگردونند با چه طریق بازگردونند با انداختن شکوک در ازهان شما که شما نسبت به اسلام و مسلمین بدبین بشید. بدگمان بشید. خب اون وقت کفر را ترجیح بدید و ایمان را رها کنید. این کارا چرا میکنند؟ حتی من عند انفسه حسادت دارند. افراد حسود همیشه همینطوری است. خودشون نمیتونند به یک نعمتی دست یابند یا توفیق انایت نمیشه برای اونها کوشش میکنن که صاحبان نعمت را از نعمت محروم کنن خب احل کتاب خودشون به اسلام نمی آمدن بر اهداف دنیوی که داشتن با وجودی که میفهمیدن اسلام حقه میخواستن خواستن ها را از دین بازگردن تا به حال هم کتاب همین دوری هم. یهود و نصارا تا به حال هم کوشش و تلاش میکنه که همیشه مسلمان ها را بیارن دیدین کنن گروهی دارن در دنیا به نام تبخیری ها یعنی یک نوع جماعت و گروهی که میان سعیاتلاششون بر این که اولا یک مسلمان را یهودی را نصرانی کنند و اگر نتوانستند این مرحله برسونند حداقل تو عقاید اونا شک و شبهات ایجاد کنند تو کل دنیا اینا پخشند منتشرن خب به اسماهای مختلف کار میکنن گایی به اینکه ما گروه کمکی امدادی هستیم گاهی به موسسات خیریه و امثال اینها بالاخص لختو مناطقی که همانند آفریقا یا جاهای دیگر که مسلمانهای فقیر و مسکین داره با این طریق کار می‌کنند و مسلمان‌ها را یا به طرف یهودیت و مسیحیت میکشانند یا اینکه شکوک و شبهات در اعیان ایجاد می‌کنند این شکوک و شبهات گاهی به مراحل میرسه که حتی برخی از اهل قلم و علمای جهان اسلام هم میبینو اون شکوک و شبهات را پرورش میدن و مطرح میکنن و بیان میکنن از کجا تحت تحصیل قرار گرفتن از کفهات با عنوان مثال ما در اسلام داریم که اگر یک مسلمان بعد از اینکه که مشرفه به اسلام شده دوباره بیاد کافر بشه اون فرد را اسلام دعوت میده دوباره به اسلام شکوک را برطرف میکنه اگر مشرفه به اسلام نشد حکمش اعدامه. یعنی مرتد حکمش اعدامه. خب امروز می‌بینیم بسیاری از کسانی که مدیعی علم هم روی این مسئله کردن. که آقا نباید اعدام بشن. یا یعنی اینکه جریان کسی که زنا میکنه و سنگ باید بشه یا یعنی دزدی میکنه و دستش قطع بشه می‌بینیم خیلی از مسلمان ها فریب قربی ها را خوردن و این احکامات اسلامی را زیر سؤال میبرن. دنبال اینن که شما را از دین باز بازگردونن بنابر حسادتی که دارن اما شما نباید به حرف این ها مطالبی فرماید اینها که دوست دارن شما کافر بشید بنابر حسادت من عند انفسهم من بعد ما طبعی لهم حق این نیست که اونها ندانن نه دانسته این کار را میکنن. بعد از این که حق برای اونها واضح شده حقانیت اسلام بر اونها آشکار شده بعد از اون برام دنبال این کارها و این تلاش هایی کردن پس شما حال این آیه زمانی که هنوز جهادی نازل نشده بود و اوایل حکم بود الله متعال میفرماست که فاصفوروا صلاح شما اینا رو در کنید معاف کنید با اونها کار نگیرید حتی یع الله و امره تا که الله دستورشو بر شما بیاورد که بعدا دستور جهاد میاد که با این نوع افرادی که بر علیه اسلام تبلیغات می و میخوان مسلمانان مسلمان را به این حرف بکشانند دستور جهاد داده شده که با اینها جهاد داده کلش این قدیر الله تعالی نسبت به هر چیز کاملا قادر و توانست. بعد علایه مثال می و وحقی مصطلح و از ای مسلمانان مسلمان نماز را برفا دارید و زکات پرداخت کنید و ما تو قدیموله من خیلی هر نیکی که شما جلوتر از خودتان به قیامت میفرستید یعنی اعمال نیک انجام میدید اجر ثواب را جلوتر میفرستید پیش از اینکه خودتان رخت سفر از این دنیا بربندید و کوچ کنید و بروید شما این را یقین کنید که تجدید و اون الله کاملا در نزد الله می آوید، یعنی ضایع نمیشه هدر نمیره از بین نمیره بلکه طبق احادیث بیشتر میشه کمتر نمیشه چون هر نیکی از ده برابر تا 700 برابر و بیشتر از اون الله تعالی به هر کس بخواد انعایت میکنه حتی صدقت را پیانبر بزرگ اسلام میفرمایش که الله متعال در دست راستش گرفته اون رشد میده بزرگ میکنه همونطور که شما بچه از بزرگ میکنی تا که از کوه هم بزرگتر میشه فسایی نمیشه ان الله اگر ما با آنچه که شما عمل میکنید الله بیناست فکر نکنید اگر گناهی در تاریکی شب یا در عدم حضور مردم یا جوری انجام میدید که دیگران میفهمند کسی نمیفهمه نه الله متعال میبینه ما انسان ها معمولا شرم میکنیم از اینکه یک خطایی یک گناهی جوری انجام بدیم که کسی از ما متوجه بشه ببینه کوشش میشه معمولا گناه ها در خفا انجام بشه. دور از دید مردم انجام بشه. در تاریکی های شب انجام بشه. در محلاتی که در محضر عموم نیست انجام بشه. اما غافل از این که در هر جا انجام بدیم جلوی دید رب العالمین از هر دیدی میشه فرار کرد بجز دید رب العالمین که نمیشه فرار کرد. پس اینجا موازه هیچ نبینه او میبیند. هیچ کس نفهمد او میفهمد. لذا این را بدانید که ان الله به ما تعملی نبسید. متعال نسبت به آنکه که شما عمل میکنید کاملا دینا هست و کاملا باخبرید. اللہی متعال به همه ما توفیق بدهد تا که موازه کردار رفتار و گفتار خیش باشیم اللہی متعال به ما این توفیق را انایت بفرماید تا روز به روز مسلمان ها آگاه تر بشیم و فریب دشمنان قسم اسلام از یهود و نصارا را نخوریم که هر کاری که اونها بکند این را ما یقین بدانیم که به نفع ما نخواهد کرد زیرا هیچ گربه ای هی برای رضای الله موش نمیگیرد برای سیر کردن خودش موش میگیره و بعد لذا ما باید روز به روز ها آگاه تر بشیم منسجم تر بشیم که الله متعال این توفیق را انایت بفرماید که سران کل جهان اسلام متحد و متفق بشن و روز بروز مسلمان ها تقویت بیشتر بشه تا همون طوری که در زمان عمر فاروق بودیم و به گفته عمر نه نقومون عزن الله بالاسلام و این ابتقین العزت فی غیرهی عزن الله ما یه ملتی بودیم که الله ما را با این اسلام ترفراز کرد و بلند اگر ما عزت را در غیر اسلام بخواهیم را دلیل میکنه و این گفته عمر ای برگرفته از آیه قرآنه و انتم الاعلان این کنتم مؤمنین شما بالا و برتر خواهی بود اگر مؤمن واقعی باشید استغفر الله علی و لکم و لطاق نحمده و علی رسول الکریم اما بعد در این چند آیه ای که بنده خدمت شما ترجمه کردم اون درس که ما میگیریم اولین اینه که اگر الله متعال در قرآن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در احادی یک حکمی را موقتاً دادن بعدا او را نفخ کردن یا ترمیم کردند، این لطف الله متعال, متعال به ما الله متعال به بشریت. از آن جایی که الله متعال ما انسانها را آفریده اخلاق ما عادات ما توان ما همه و همه را می داند لذا احکام مناسب نازل می برای زمانهای مناسب و بعدا اون را بر می داشته. این جریان در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده بعد از وفات رسول الله هیچ حکمی منسوخ نمی شه، هیچ حکمی برداشته نمی شه اما برخی از احکامات خود رسول الله گفتن که در زمان آمدن ایسا ترمیم میشن مانند اینکه جزیه برداشته میشه کفار دیگه نمیتونن جزیه بدن یا باید مشرفه به اسلام بشن یا گردنشون زده میشه خب اینا خود رسول الله گفتن دیگه لذا ما نداریم که بعد از رسول الله بگه مقا فلان آیه منسوخه یا فلان حکم منسوخه نه ناسخ و منسوخ یک جریان بوده که در زمان حیات پیامبر اتفاق افتاده بعد دون اتفاق نخواهد افتاد تا به روز قیامه نقطه دیگر اینکه تمام آنچه که در زمین و آسمانه همه و همه در ملکیت رب العالمین هم. ما اگر چیزی در اختیار داریم اون هم از رب العالمینه ما هم از رب العالمین لذا اگر کسی جمالی داره اگر کسی مالی داره اگر کسی فرزندی داره اگر کسی پست و مقامی داره به اون ننازد اون مال چی در دردفتش حالا یه مطال بزنم ابو تله زمانی که با ام سلیم ازدواج میکنه با مادر عناس ابن مالک بعد از وفات شوهره ایشون یه ای داره این بچه مریض میشه. شوهر دنبان کار میره بیرون و بعد میاد. خانه شب که به خانه میاد از خانمش میبورسه بچه چطوره؟ حالا نگاه کنید ایمان را. و وقتی که انسان معتقده که هر چیز از رب العالمین مسئله تمام دید. هر مشکلی هر مصیبتی بیاد نباید ناراحت بشه فی الواقع چون مال اونه بوده من الان یه مثال بزنم اگر ماشینی یه نفر تو آفریقا بسوزه خبر به ما برسه زیاد تاثیراتی نداره چون دیگه مال دیگری بوده مال من نبوده حالا مال خود ما منجوریه فی الواقع مال ما نیست اون طبیعت بشری سر جای خودش ولی مال مال مانی گرچه که دست ما باشه گرچه در ملکیات ما باشه میپرسه بچه چطوریه. میگه بچه آرامه. شب این خانم خودش آراسته میکنه با شوهرش همبستر میشن. صبح که میشه. حالا نگاه کنید ایمان صحابه. این باید توی کتب صحیح مثل بخاری مسلمه. صبح که میشه میگه برو اول بهش یه مثال میزنه. میگه من یک مثال یکی یه ازت میپرسم. ابو تلهه. اگر همسایه های ما یا کسی به ما یه امانتی عاریتی داده باشه بعد بخواد اون امانتش بگیره ما باید ناراحت بشیم میگه نه میگه برو بچه تا دفن کنی یعنی این امانت الله دست ما بوده الان از ما گرفته ناراحت نشو برو دفن بشیم ببین ابوت علیکم ناراحت میشه. میگه تو دیشب به من نگفتی ما با هم همبستر شدی. شدیم الان داری به من مطرح میکنی رستن از رسول, رسول گفت, الله پرسیدن رسول الله گفت اللہ تعالی اون شب برکت عنایت کنه خب بعدا خودمان بیشون بچه میده اسم این بچه رو میدهرن عبدالله از نسلی برخی از علمان میگن حتش رو قاری قرآن و عالم دین پیدا میشه عزی. حالا ببینیم وقتی که این زن سحاوی معتقده از الله حتی بچهش از الله خودش از الله شوهرش از الله با دست دادن از بچه ناراحتی در خودش احساس نمیکنه که هیچ به رخ شوهرش هم نمیاره صبح میگه امانتی بوده الله از ما گرفت این عقیده هرچه بالاتر بره یقین انسان بیشتر میشه مشکلات انسان کمتر میشه بیماری اعصاب و روان انسان نمیگیره دست به خودکشی نمیزنه زمان مصیبت سکته نمیکنه نقلی دیگر این است که دوست اصلی ما الله. مطال متعال می‌فرمازد مالک من دون الله میولی و ولا شما نه دوستی دارین مددکار. پس وقت دوست اصلی ما الله مددگار اصلی ما شما هیچ عاقلی را تو دنیا نمی بینید که یک شخص را دوست داشته باشه سپس کار بکنه که دوستش بره. سپس کاری را انجام بده که برخلاف طبع دوستش باشه. سپس کاری را بکنه که دوستش باعث ناراحتی و قرر کردن اون بکنه. پس تمام گناه ها، تمام خطاها، تمام اشتباهات را اگر انجام بدیم با اینسان ها باعث خشم و قذب و ناراضی الله میشه دوست را نباید از خودش منزن. تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشه. ما هرچی در این دنیا انسان دوست بیشتر و دشمن کمتر داشته باشه زندگی راحتتری داره. اون کسی که دشمن تراشی میکنه دوستار را از دست میده یقین کنه که زندگی تلخی خواهد داشت کدام دوست بالاتر از رب العالمی که اگر اون دوست از ما ناراحت شد تمام دوستان دنیا را هم از ما ناراحت میکنه اگر اون دوست از ما رنجید هیچ دلی را نمی گذارم اگر از ما میرم که نصیف هیچ مددگاری نداری چشم به پدر نیندوز چشم به برادر نیندوز چشم امید به اینان نداشته باش چشم امید اول به ربالالمین باشه در حالت حالتها در پنگناترین حالتها ذاتی که انسان را کمک میکنه، الله اللہ است و برد درها به روی یوسف بسته شد چی بست؟ زن عزیز مصر برای چه بست؟ برای کشاندن بفتساد. اما چون به هر در بسته این در باز می شد. زه حکمت خداوند بندد درید. زه رحمت گشاید دری دیگری؟ از این طرف زن عزیز مست درها را بست. از اون طرف رب العالمین درها را باز کرد. هیچ بسته ای در بسته در مقابل تقنی الهی نیست. هیچ توانی در مقابل توان الله نیست اگر اعتقاد قوی باشه درهای در بسته شده باز میشه قصه سه نفری که در قار گیر کرده بودن سنگ افتاده بود در قار بسته شده بود یکی گفت خدایا من دختر اموی داشتم میخواستم با او عمل بد انجام بدم اما به من گفت از الله به تسقه کردم دیگری گفت کارگری داشتم مزد اون کارگر از من نگرفت و رفت من تلاش کردم کوشش کردم بیشتر کردم زمان آمد همه رو باش دادم من به صورت مختصر میگم دیگری گفت پدر و مادری داشتم چوپان بودم شیرها را میدوشیدم اول به پدر و مادر میدادم بعد به فرزندها یه شب دیر اومدم پدر مادر خوابیده بودن تا صبح کف دست گرفتم تا این که پدر و مادر بیدار بشن اول نوش جان کنن بچه ها گریه میکرد زوزو میکردن ندادن جوانها خوب گوش کنید تا صبح همینطور ایستاده صبح اول به پدر و مادر میده بعد با این ارتماس بر عالمین سنگ بسته شده دم قار میشه و میده شما با الله باشید الله باشد اگر کسی با الله بود هیچ در بسته جلوش نیست اگر هم بسته باشه باز نشه حکمت رب العالمینه سعلای اطلاع حکمتها رو بهتر میدونه از من دیگر اینکه که سآل بی جا که باعث شکوک و شبهات بشه ممنوعه چرا که دشمنان اسلام وقتی این شکوک را مطرح میکنن هدف اینه که ما مسلمان ها رو به انحراف حرف لذا من توصیه میکنم بلخص به جوانانی که با اینترنت و موارد سرکار دارن هر شک و شکوکی که اونجا میبینن هر جا مطرح نکنن بلن از اهل علم، از متخصصین، از کسانی که توان پاسخگویی به شبهات را داره از اونها در انفرادی بپرسن نه اینکه در جمع افراد مطرح کنن و با این طریق فکر کنن که روشن فکر شدن و آگاهی از مسائل دارن نه خیلی افراد هستند که با اندک چیزی میبینید به گمراهی کشیده میشند گناهی این به گردن اون کسی که این را مطرح میکنه لذا شک شکوک را هرگز در جلسات عمومي مطرح نکنید اگر در ذهنتان شکوکی هست اولا من توصیه میکنم از هرکس هرکس نپرسید چرا که هرکس توان پاسخگویی را ندارد شما را بدتر به شک میاندازد شما را بدتر به راه انحراف میبرد از کسی به پرسید داره در ثانی این را هرگز در جمع مطرح نکنید که اگر در جمع مطرح کردید باعث انحراف میشه اینه که الله متعال میفرماست ام تریدون ان تسالوا رسولکم كما سئل موسى من قبله انه سوالات ممنوعه نکته دیگر این را ما یقین بدونیم که بسیاری از اهل کتاب از یهود و نصارا این اروپایی ها یا یهودیان یا نصرانیان مسلمان هم توشون داره ولی الله هم. ولی اقتدار به این دو گروه امریکایی همینطوری کل دشمنان اسلام عمومشون همینطوری هن. خب مشرکین هم توشون هست دیدین ها هم هست کومنیست ها هم هست اونها باز بدتر از اهل کتاب اینها هیچ وقت دوست ندارن که اسلام تو دنیا باشه هر جا بر کشوری از کشورهای اسلامی حمله میکنن به بحانه مختلف بلاحق دروغ میگن هدف اینه که جلوی اسلام را اگر گروهی از مسلمانان را تقویت می کنند گروهی را ترکیس می هدف اینه که به اسلام ضربه بزنند این کارهای اشتباه را اونا می من یک مثال می زنم شاید برخی از این مطال منم خوششون نیاد شما این داعش را نگاه کنید که هر چیز را درو می و میره. من خوب گوش کردم به اخبار وقتی بی بی سی لندن اسم داعش را می به اسم حکومت اسلام چرا؟ تا که به مسلمان ها و غیر مسلمان ها بفهمونه اسلام که شما میگید همینه با این طریق میخواد اسلام را بدنام نام کنه نمیگه داعش میگه حکومت اسلامی شام و ایران با این کلمه را و میده بعد از اون سو به غربی ها و دشمنان اسلام میگه نگاه کنید شما را مسلمان ها و دایان دین فریب نگن اسلام اینه سر بگره، بکشه، قتل کنه جنایت کنه این کارا را برای چی میکنن؟ به خاطر برنامه اسلام ولن اون دوست نداره که نام اسلام تو دنیا شنیده بشه اینکه باربار بار بار حکومت اسلامی و الفلان و الفلان هدفشون اینه همیشه کارشون این بوده لذا ما باید این چیزها را متوجه باشیم این چیزها را بدونیم که هر حرفی که یهودی یا نصرانی زد یقین کنیم که به نفع ما نمیزنه و به نصر خود چنان که سالیان سال پیش اباما رئیس آمریکا گفت مهمترین چیز برای من آمریکا و ملت آمریکا یعنی مسلمان ها برای مهم نیستن افراد برای مهم نیستن اون که برای مهمه آمریکا مهمه اون که برای مهمه ملت آمریکا مهمه همینطوری دیگه سران و کفرم همین حرف رو میزنن. لذا ما باید متوجه باشیم که کفار هیچ کاری را به نفع مسلمین نمیکنه. ما مثل ما اگر محتاط بودیم. ما مثل ما اگر دانا بودیم. ما مثل ما اگر متوجه بودیم. حالا اگر دنیا به ما ضربه بزنن خب بزنن. اما دین ما، ایمان ما، آیین ما را از ما نگیرن که خسر دنیا و الاخره بشه. سخن به درازا کشید نقطه دیگری که خدمت شما عرض کنم اینه. انسان وقتی که توان مبارزه با کفار را نداره تا افوه است درگذر در کردن با حکمت جلو رفتن تا اینکه اوضاع مسلمانها مسلمان ها بدتر نشه شما ما ببینید امروز ما تو جهان اسلام زندگی میکنیم خیلی مسلمان هستن در کشورهای اروپایی، آمریکایی، چین شوروی و همسال اینها زندگی میکنن که توان هیچ چیز را ندارن اونها باید با حکمت برن جلو تا که روز به روز اسلام پیشرفت کنه و به تعداد مسلمان ها افزوده بشه. الان یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان تو دنیا وجود داره و روز روز از تمام ادیان دین اسلام ترقی و پیشرفت پیشتری داره و انشاالله امیدوارم که الله تعالی این زکمت را به مسلمان ها اناید. نقطه دیگر این الله تعالی میفرمد نماز را برپا دارید و زکات را بدهید که نماز و زکات دو تا رکن از ارکان اسلام. کم توجهی به این دو درمیان مسلمان بسیار زیاد. نماز پنجه درصد به بالای مسلمانان نماز, نماز نمیخوند. و در حالی که ترک نماز کفر طبق احادیث صحیح و عیمه بزرگوار اسلام شدیداً با تارک اسلام مخالفه. امام ابو حنیفه میگه زندانش کنید تا توبه کنه. امام شافی میگه بکشید به عنوان یک حد. امام احمد بن حنبل میگه کسی که تا تارک الصلاۃ مستنط عمل اسلام واجب القتل اگر توبه نکنه. که نماز در مهمه، اینقدر اهمیت داره. شما رو کنید نماز را اسلام از لحظه بلوغ واجب میکنه تا زمانی که عقل در سر باشه میگه باید بخونید. پیر باشید، جوان باشید باید بخونید. مریض باشید، سالم باشید باید بخونید. در جنگ باشید، در سلح باشید باید بخونید. نشسته شد بخوان. نه ایستاده شد بخوان نشد دراز کشیده شد بخوان نماز از دقل. نباید قضا بشه و نباید ترک بشه در قیامت هم میپرسن ما سلک کمس سخر چرا به جهنم رفتید میگه ما نماز بخان. بحث زکات هم همینطوری رکنی از ارکان اسلام انکار او کفره ترکش گناه کبیره زکات کمک به مستمندینه کمک به نیازمندان این پولی که ثروتمند میده مال الله است الله بهش داده که تو با این به خودش بهشت بخر میره با خودش جهنم میخره مانند این که بابا به بچهش پول بده بگه پسر نازنین برو با اینها بره خودش لباس بخر میره سم میخره میخوره و میموره و از دنیا میره این عقل الله پول را به افراد ثروتمند داده این الله اشتر را من المؤمنین انفسهم ها و انبال همون دل همال این پول را که بهشت بخری نداده که عذاب جهنم بخری ا زکات رو باید داد من راه گفتم این زکات رکن مظلوم اسلامه که دو قشن برنام کردن یک مله های مادیگرای پولخور از که از مردم خوردند و گرفتند تا نام زکات را میبرید یکی جوری به انسان نگاه میشه گروه دوم، گروه مادیگرای پول پرست که به خاطر مال دنیا و جمع کردن پول دنیا از زکات فراریان خبر ندارند که فردای قیامت این تلاها، این سکه ها یا مار میشه که اون زکات ندهنده را میگیره یا داغ میکنند، پهلو بازو و پیشانی این افراد در روز قیامت داغ میشه به نسل قرآن و حدیث و به این عذاب الهی گرفتار میشن. ازا مسئله زکات را ما باید مهم بدانیم دادن زکات باعث این میشه که افراد از جهنم نجات پیدا کند امیدوارم که الله متعال به ما توفیق خیر، نیکی، اعمال صالحه، کردار شایسته را انایت بفرماید امیدوارم که الله متعال ما را از دنیا پرستی، گرایی نجات عنایت کند امیدوارم که الله متعال به تمام حکام جهان اسلام، اتحاد، اتفاق، فهم درست رعایت ملت ها را انایت کند امیدوارم که الله متعال به تمام ملت های جهان اسلام هم توفیق فهم درست دین و تحمل دیگر را عنایت کند تا که کمتر در میان مسلمان ها اختلاف کشت و کشتار تخریب باشه امروز تو جهان اسلام هر جا نگاه میکنید بزن به و تخریب و تباهی اللہی متعال لطف کنه این عذاب را از ما دور کنه این اختلاف را از ما دور کنه اتحاد و اتفاق و انسجام و برادری و مهر و محبت را انایت کنه تا مثل زمان صدر اسلام و همانند صحابه را همه و بینه هم داشیم. با هم مهر و محبت داشته باشیم نسبت به کفار خشن باشیم نسبت به خود ما تحمل ما بیشتر باشد خونگوی لسلات و رحمه کمالله و سلام و